رادیو طلا و مس نویسنده حامد محمدی بازیگران نگار جواهریان تور به جدن فاطمه زهر را قسمت میدم شما یکی راست شوهبه آقا شما که ایش بخد دروغ نمیگفتی بهروز شعیبی دکتورید گفت وقتی زهر استاداد برگشت خونه برای بچه‌ها نای, نای نای نای کنه جواد عزتی نهده چه صاف خون خوش اخلاقی پیدا کردم؟ مهران رجبی. اینطور که پیداست منظورم خدمت اجقا صعادت کنید بله صحر دولتشاهی. شاهی اینار خودت براش ببر فقط خیلی طولش نده وقتی استاضراحت مریض است آیدا عادلپول اسمم آدا زهرا وعبث زرگری ما دوست ندارم بعد نظر تهیه کننده من چهره محمدی آهنگساز ساز آریا از کارگردان همایون از عدیان. طلبه جوان در دفتر مدرسه طلاب در حضور هاجاغا نشسته و هاجاغا با اون صحبت میکنه استاد رضا خادمی نیشابوری. الحمدلله همه درسام هم خوب خوندید. عرض کنم سه سال اول که همون نیشابور خودمان بوده. بعد یه دو سالی رفتم مشهد، مدرسه خان. دو سال اخیرم که مدرسه کمالی یزد بودم. حالا هم که بله چه سعادتی اینطور که پیداست منظورم خدمت حاج سعادت خوندید، بله؟ احسان، احسان. سلامت خدا. حالا اومدیم تهران، اگه بشه سعادت باشه، از درس اخلاق حاج آقا استفاده کنیم. در خونه قدیمی سید رضا به کمک حمید وسایل رو داخل خونه میاد ما شالله اندازه یه خواهر اساس داری سید سید نهبری ریاد رفتشو خالی کنی ها خیلی سکر باید باید. ای سید کم کم هم گرفت آما, اما سید قربه دسته 20 همه تین سیدیه شایی رو میگیری دسته داری آتفه با ماهی های توی حوض بازی آتفه جونی بیا تو ما ما سرمانه ازیاد نکن شیطونه نکن کشتین زبان بس ماهیه را چهار نفر آدم اندازه یک این اساس آورده یعنی چکی ازیاد نیره دا این دردین چه سابخون خوش اخلاقی براتون پیدا کردم صدای آهنگ یکی از همسایه ها توجه سید همسرش که بچه نو بهداره و حمید رو جلبه مشاله هزم خونه این کموالاتش تکمیله با همین مطمئنی خونه برای ما مناسبه در حیات مدرسه طولت سلام علیکم حاج آقا سلام علیکم حاصل رزا کجا بایین اجاله؟ آقا دنبال همین کارهای انتقال شهری هستن باید هنوز درست نشده؟ شکل خدا یه اقداماتی شده میگن یه یمای زمان میبره دیگه کلاس اجازه رحم وقت شما رو نمیگیره اگه خودت مائل بودی میدونی تدریس کنی حالا البته دروس مقدماتی ها محبت اینا اجازه بنده حالا حالا طلبه هستم باید شاگردی کنم موافاتی ندارید حالا اگه اجازه بدین می خوام فرصت یادگیری رو از دست خانه این مدرسه این روزای کسی واسه کتاب پول نمیده مردم روز ماش هم به زور چه برسه به کتاب اونم اینالچه کتاب عتیقه ای که شما دنبالش میگردید نفش غرب کردی؟ گفتی موضوع کتاب چی بود؟ اخلاق در باب اخلاق و نظری اخلاق؟ <تصفيق> بگرد بگرد همون بالمالاها شاید پیداش بکنی در قطار مترو سید نشسته و مشغول مطالعه است پسر بس بس. بچه ای سازدهنی میزنه و دختری فال میفروشه سید جواب نمیده و همچنان مشغول مطالعه است همسر سیده در حیات خونه مشغول اصلاح سر سیده و عاطفه لیلی بازی میکنه پول پیش اجاره خونه رفتم میختم بانک به حساب ازم خانم میدونی سید حسابش برای سبتنام حجه همیستر خیابونم هم یه دکتر ششمه دختری با اینک تهستکانی از پشت پنجره اونها رو نگاه عاطفه آتفه میبینهش مدیرشون خیلی خانم بود سبتنام نمیکردن کردن نکسه ماه از سال گذشته؟ که فهمید شما طلبه ای نه نیوان آسایی یه چیزی میگم نه یا خب هم بفرمایی فردا بارو بازار یعبای نو بگیر عبا برچی عبا عبا دیگه پاک کنه شده تو ترون خوبیت نداره نگران پولشم نباشه تاریشو بزر ببینم خودا منو بکشه نه خیر چیزی نشده نه خیل نمیدم چونه یه وقتایی چشام دو دو میزنه همین سر انگو میگم واسه یه وقت مرض ناشوری نباشه. زهرا صدادی حرفا چیه؟ برای خستگیه. این مدت شما خسته شدی حرفا چیه میزنی؟ در حیات مدرسه توران. سلام و علیکم استاد رضا. علیکم السلام حاج آقا سلام علیکم. آبلالله. خدمتون خدمتتون که جلسات درس حاج قرهیم از هفته دیگه در اینجا برقرار. آشیخ خادی مطلن ما خیلی تلاش کردیم تا ایشونو متقاعد کنیم که جلسات درس اخلاقشون رو در مدرسه ما برگزار کنن. خدا خیرتون بده. لذا همه باید تلاش کنیم که درسیشون مرتب و منظم پیش بره بین ازیم از طرف آقایون طلاب نباشه بهتره متوجه عرضم هستید که و؟ نمازتون دیر نشه الف ماستو ها سید کارتونی رو باز می‌کنه و کتاب های مذهبیشو در می کن به طرف عاطفه میره و آستین رو پوششو می دوزد برای آتفه جونی ماکارانی درست کردم یه ذره دیگه صفت تموم تمام می ش آه یه روزی قشنگی برای خانم جونی درست کنم. ببینم تکون نخوره. آه. امیرها بابا را اذیت نکنی. نه اذیت نمیکنه اومده سراغ کتابای بابا. بیا بابا. بابا. سید امیرعلی نهم ماه رو بغل. زهرا سادات فکر کنم بچه‌خودشو کثیف کرده. آلم بیا عوض جونی کار خرابی کردی. بیا بخاره ماما آه. ماما بازگر رفتی حاطفه جونی یه در کن الان می این داداشی بانه هم در پاشت می سوزه و باز صدای آهنگ همسایه توجه سیه رو جرد می به طرف پنجره میره و پردر رو کنار میزنه کمی عصبیه زهره صدا اگه میتونی با یه خانم صحبت کنی که اما را تو سنه شبا نه خانم تنها نیست که یه دختر هم باشه یه اونم نوشه حالا یکی چرا قایمش میکنه خداالمه تنس... سید آشنا رو بالا زده اینکش رو در میاره هولر رو بر میداره تا بره وضوع بگیره سید نماز میخونه زهراساداد قالیچه میبافه آتفه مشق مینویسه و امیرعلی در را رو بک سادات اون موقعی وضوع گرفتم گفته چگاه کنم؟ چیزی می نبود. نمایی از شهر شلوغ تهران و رفت آمدهای مردم. حمید و سید در وانته حمید. سید: ابا حمادت، یه‌رسم یه توکیو میریم بازار فرش. اونجا یارجی مسئولی است خیلی آدم خویو با من آشناست. از جهت فروش قالیچه ارزش میکنم حالا تا قالیچه تموم شه وقت زیاده. البته بابره تملق چاپوزی گفتیم واسه آچخانم مادر امینعلی بر کیه آستینی واسه ما بالا بزنه. سید نمی‌دونم چه حکمتیه به طلب جماعت دختر نمیکه. من اگه چی بشه شانس بیاری مثل یکی از این هممدرسی های مهادی دورچهی رفته دختر یکی از این گنده های سنف تلاو جواهر گرفته هم دنیا رو دارم آخرت بله بخند بخند پایدم بخندی درد تنهایی نکشیدی که روز باربری و درس و بحث و مدرسه شب هم تا صبح باید با شیطان رجیم سرکله بزنیم زهرا ساداد <تصفيق> با دو بچهش از بیرون میاد و وارد حیات خونه میشه دختر اینک تهستکانی با ضبط صوتی کنار حوز گوش میده تا زهراساداتو میبینه میره توی خونش زهراسادات لبخندی میزنه و میخواد بره که دختر اینک تهستکانی در رو باز میکنه و اونارو رو نگاه کنه دختر از اون نیترسه زهراسادات براش دست کن میده دختر بسات مهیا میشه و عاطفه تاموجری تماشا میکنه عاطفه برای کمک به مادرش به آشپزخونه میره بیا مامانی بشقاواره ببر تا سایه پشت در توجه عاطفه رو جلب کرد مامانی هم میبینه زهراسادات لبخندی میزنه و بشقابی به بشقابا اضافه میکنه زهرا دیسه پولو رو بر میدار و سر راهش در خونه رو نیمه باز میکنه دختر اینک تهستکانی مردد پشت دره آم امیر آقا بخوره؟ گان گان گان گان گان گان بخو ماما بخو خوف میدرم آم. ماما. ماما اما والد میشه سلام خانم قشنگه چرا نمیان تو هزا خوردی؟ نه نه خورده اسمتو بخاله نمیگی؟ هر کی اسمشو اول گفت برنده است آتفه اسمم آیداست سید در کوچه قدیمی حرکت میکنه تا به خونه میرسه بچه ها تلویزیون نگاه میکنن و سید به کمک آخنام. زحم سودات امامه شد جمعه مامان بریم اینجا کج مامان شهر بازی همش از بابازیه دست شما اگه عاطفه جونیت تو مدرسه تهران شاگرد اول بشه میبرمش شهر بازی مامان گشتنه کاشم <ماما> می‌خوریم عاطفه جونیک بیا مامان اینو بگیر و می‌شینه و عمامش رو دور زانوش آوی. آماده میکنه که زهر سادات شالی دور گردنش بندزه اینجا هوا سرده شما که اصلا حواست به خودت نیست. بس شما داد نکنه. با همه گرفتاری که وقت کردی اینو ببافی. آقا سید جاکتت هم کنه شده. انشالله دو 3 روز فرصت کنم میرم کاموا میگیرم یکی بعد. آخ چی شد؟ هیچ چیزی نیستش. همه گفتم که چشام گای دو دو میزنه. بده دستو ببینم. چیزی نیست. سخت که دیدن نداره شما به کارت برس من خودم درستش میکنم. آتفجونی مامان بیا اینا سفره رو شب شد. باز هم صدای آهنگ آیدا. سید پرده رو کنار می زند آیده توی خونه خوابیده و عزم خانم زبط خاموش می کنه صبح شده عاطفه لباس پوشیده و آماده رفتنه سید هم آمده جنی زود باش ما آن دیر خرابه خراب نیز کردونه برم شما آقاست به تلویزیونه. آما سید هوا خیلی سردشار گردن یا نربودمو سید و زحر صادات که میری رو به گرفته چشم در چشم میگاه میکن از سید زه و صداتشار رو دور گردن سید مید حلو شدی يا طلبه خانم توی حیات آيدا رو دعوا میکنه. بس یه نزاکت. من خودم میبرمش مراقبهش. میکنه. چیزی چرا نیم سبزی خوردن اگه گریدو مت دست شما در سید و در اتوموبیل عنده جد بزرگوارم اگر اون عمو از سرت برداری شه مشتری به پست ما بکنه شما هم یه زحمتی بکش یکی دو ساعت این کاسبی رو فراموش کن ما این جلسه اول به موقع برسیم کلاس شما چه رو با این همه کمالاتتون کسب روزی حلال نقدن عین جهاده من کاسب شیخ انصاری که ان شاء مطالعه کردیم الله اکبر امممشو به درحاله بهتر اینا هم برای کسب روزی علال شما خدا رو در این همه بحث گفتوگو شما مسائل مربوط به کسب و کار خوب یاد گرفتید نقدم تایی فرماده از ده انگار ما رو ساخته واسه باربری بدخواب آقا جون ما دوستاش مارو تو لباس روحانی ببین ما هم که دل نازوک دلشو نشمه الان قرار نیست مشتاید جامعه و شرایط بشم همین سطح مقدمات باسه ردخ و فتخون بر شهر ما کافیه الحمدلله روزی ما هم شخصی وانت می‌خواد و اون‌ها رو متوقف می‌کنه. حالا وانت فرست کارتون شده و سید پشت وانت کنار کارتون‌ها نشست. سید با عجله به مدرسه طلاب می‌رسه و خاک عباشو می‌تنه. با سید رضا سلام علیکم. شما مسیج تذکرات بنده رو فراموش کردید. اختیار در اینا جواب این چرفه. مشکلی پیش اومد. الله حال جلسه امروز که تمام شد. ان جلسه یرا. سید محمود فقط به رفتن هاجاغا نگاه میکن. عجال نکنم این دقا انشالله جلسه بعد همی لباس طلبگی پوشیده و عمامه سفید به سر بذاشته خواستید خوب خدا گناه داشت آدرس هم که بلد نبود دیدین که خدا رو خوش نمی آمده که همجوری بهش میکردیم خواستید جلسه اول که مقدماته که ماشالله خودتون بلدین نیگه سلام علیکم سمنایکا و عشقادی دار چه این؟ بفر بایی سید این همون شیخیه گفتم دختر سنف تلافروش ها اینا به فاطر دستش که نصف شبه زهراساداد لالایی میخون سید مشغول مطالعه است آقا سید سید با اتا خواب میره نمیدونم چرا نخافل پا امسوست جو بیزه همت یری من رو براتفه میاری سید میره و آب میره ببخشیدم احتراما نمی‌دونم چه یه جوری شدم. شده. خسته شدی. یه کم استراحت کنه خوب میشه. بیا عطف جون. بخوام. چه به سراغ کارهای خودش میره. عباش روی دوشش می می‌خواد میخواد مشغول شه که زهرا ساداد بیرمق از اتاق بیرون آتفه هم خوابید میدونی ها سید آتفه جونی خودم شده نصف شبه از خواب بیدار میشه تش نشه زهرا سادات شما حالت خوبه؟ هیچ. نه خوبم خوبم شدم اینه او بی بی خدا بیا پاام جون نداره نمیشونم تکونش بدم بخف فه به زمین میفته بود سید نگران پا میشه همین با برید سری سمت روی بیچین و توی اونجا سی بیمار مردی خابیده و همراهش بالای سرشه سید پرده بین دو تخت بیمار رو می کشه و بالا سر زهرا سادات میاد. ناله مریض دیگه توجه اون رو جلب میکنه و پرده دیگه رو هم می‌کشه. دکتر پرسان میاد. سلام علیکم. چی شده؟ والله چرت کنم آقای دکتر. یه چند روزی هست میگن که چششون دو دو میزنه. انگشتشون گزگز میکنه البته زیاد کار میکنه. امشب ناغافل پاهاشون سوز رو حدس بنده اینه که به خاطر همین کار زیاد باشه چند وقت اینجوری شدی؟ همین یه چند ماهی میشه خودش میگه چند ماه شد چند روز زید سر پایین بیمست خانم نگسته خانم پرستار. دکتر با حرکات انگوش چشمای زهرا رو معاینه میکنه پاحتم میرسه برا قدر کجاش همه جاش اینجا استری نه اینجا چی نه آقای تا اینجا اینجا چشماتم دردو میزنه آقای دکتر <تصفيق> پرستار بالای سر مریض سید از کنار تخت دور ماشی. دکتر پیش خانم پرستار میده نبز نبض می سید نگاه میکنه و بعد فاطمه خدا بتونه بسم الله این پاتونن داره ها بالا در راهروی بیمارستان سید زهرا سادات با ویلچر حرکت میده به آزمایشگاه میرسه دو بیمار بر فوت شده ای رو روی برانکارد می برن. سلام علیکم کسی اینجا نیست؟ زهرا سادات نگران اون میمونه. آقای سید، تو رجادت منو به خونه. توریم نیست بخدا تا صبح خوب میشه. اینجا یه خوفی داره. متصدی آزمایشگاه خمیازهکشان بالاخره میاد. سلام علیکم. از مایش دارید برای برای دفترچه رو میده پرستار سروم زهراسادات رو میزنه و میره. سید و زهراسادات فقط به هم نگاه میکنن انگار حرفی برای گفتن نداره دکتر میاد آقا باز که دادی درد که نداریم نه آقای دکتر میتونم برم خونه برای اومدی بعد تا صبح سب کنید جواب آزمایشت بیاد دکتر ما تخصصم ببیندتو برد مگم بگم یک آرام بخش بزنن استراحت کن شما هم همیجا باشید که اگه وقت قریداش اگه بشه من برم خونه و چام تنها خودش میدونی فقط زود برگرد ممکنه کاری داشته باشه خانم من تو اتاقم هم اگه موردی برش شما خبر برید چنشمه دکتر زهر سادات ناراحت به سید نگاه میکنه و سید انگار کسب تکلیف میکنه سید از اورژانس خارج میشه حمید همچنان با نگهبان بیمارستان جر و بحث میکنه سید به خونه رسیده در اتاق بچه ها را میبنده سراغ غابه عکسی میره که حاوی عکس خانوادگیشونه عکسی در حرم رضا سید مشغول مطالعه میشه از آن صبحه سید برای وضوع آماده میشه روز شده آیدا توی خونه اومده سید کتاب به بغل خوابش برده پاشو استابه پاشو دیگه چرا هم میخواهی پاشو دیگه سید نگران پا میشه خوار دهراخو رو به بابا مفتر سرف بری کن بری بربا نماز کجاست سید که رو از پول بر بود بود بود بود کتابات برداشتی بله بله استاد آبرو واسه رفتی سراغ بشی بشی. بجون بجون. تلویزیون بشین بابا بشین بابا جان شما که اپ خوشگون بودی بجو تلویزیون خاموش کن اعظم خانم و آیدا توی حیات هست بودو بابا سلام علیکم اج علی السلام بین تلفن ما صبحانه دادین صبحانه بود خدا هیچ خونه ای را بدون زن نگذار بی مادر این لغمنو زن تو کیفیت رو پوشیتم کی هاش خوب نبستین آره دهرم من همو ندارم درسته امروز نمیشه فردا خال زهراب بیاد بعد آقا سید فروزن ته هم امروز ورش تا بیا خونه نگذار نگرانش دارم بیمارستان چاش ما فقط اگه زحمت بکشین بچی کوچیک رو نمیدن تو بیمارستان گفتم یک لطفه برو کنیشون حرفا میزنی آقا سیده من با این زانه درد میتونم از پس بچه بر بیام معکد هم در نمی کنم سید تو آتفه تون به طرف مدرسه میره. سید نگران وارد بخش زنان میشه ایسکای پرستاوی کسی نیست برخش. به طرف اتاقی میره لا لا. یک بیمار و همراهش معذب خودش رو جمعا جور میکنن. سلام آمده به ببخشید سید سربزی به طرف تخت زهره صدات میره تازه خوابش برده تفلی خیلی بیقراری میکرد همش دلتنگ بچه هاشه شما شوهرشی بله بله خدا فیاد بده این شا. خیلی ممنون زهرا چشم باز میکنه سید چادر نماز براش آورده سلام علیکم الهمدلله بهتری شکر خودم آقا سید جانا. من به برخونه و ها تنام گناه به خودم چشم شما اجازه بده ببینیم دکتر چی میگه چشم ای شما اینجا چی کام میکنیم سلام علیکم گفتم توی این اتاق چی کام میکنیم اینجا بخش زناست بفرمایی بیرون آقا سید شوهرمه شوهر شماست شوهر بقی مریضا که نیست بفرمایی بیرون فقط ساعت ملاقات بزنم. باید ببخشتیم سید شرمنده و سربزیر از اتاق خارج میشه زهر و ناراحت و نگران قلطی بزنه سرپرستار از اتاق خارج میشه اشارهی به پرستاری میکنه و وارد ایسکای پرستاری میشه و مشغول نوشتن چیزی در پرونده مریض میشه بسه نباشیم ما دیشب آمدیم و جانس نگفتن چیه آزمایش هم دادی اونتها گفتن باید پزشک متخصص ببینم. روت نمیشه منو نگاه کنی ولی خوب تو بخش زنو جاولون میدی حواسم نبود حق با شماست من که حسکایی کردم خانم دکتر توصیفیان دکتر خانم ادیا اونجا صحبم ویزیتش کردم میتونی از ایشون بپرسیم خانم های دانشجوی پلستاری دقیق کنید این نوع بیمارا مراقبت ویژه‌ای لازم داره. سلام علیکم. سلام. من شوهر خانم موئینی هستم. خانم موئینی؟ زهرا سادات موئینی. کدوم اتاق؟ همین 403. گفتن شما دیدینش. آها. او خانم جوانی که متاسفانه مشکوک به ام ازه. خانم شماست؟ ام اس؟ یک بیمار مشکوک به ام اس. براشون ما جالب باشه بیاید ببینیدش. بیماری ام اس در خانم‌ها تره. به خصوص در های جوان هر بیماری هم مشخصات خودشو داره یعنی چی یعنی هم علائم بروز بیماری هم ادامه بیماری ممکنه با هیچ موردی مشابهت نداشته باشه ظاهرا این بیمار از چند ماه پیش دوچاره دوبینی میشه بعد هم بی‌حسی نوک انگشتان دست خانم دکتر به همراه دانشجواش بالای سر زهرا میاد بی‌حسی از زهرا نگران به سید میگه البته مریض و خانواده‌اش این مساله جدی تازه کم متوجه بیماری زهر و صداد شده زهر و صداد با این توضیحات خودشو باخته سید لبخن میزنه و زهرا گریان رو زیر چادر نماز پنهان میکنه ایستگاه پرستار خانم دکتر میره و سید سربزی رو به تکلیف استاده سید نگاهی به سرپرستار سرپرستار هم چشم در چشم فقط به اون نگاه میکنه خانم دکتر نه این چیزایی که فرمودیم ذ و صدا یعنی چی؟ خانم شما مشووب به بیماری MS البته باید امامارا بشه تا مطمئن بشیم بره حقیقتا ما اطلاعات پزشکی ندارم این MS چی هست؟ MS یه نوع اختلال عصبیه که ممکنه منجر به فلج بیمار بشه. البته روز چیزی قطعی نیست؟ فعلا چند روزی مهمون ما هستند ان شاء که مسئله مهمی نباشه شما اصل اتاق 402 رو آماده کنین یا آمپول مسکنم بزنین به اون حاج خانوم مراقبش باشین بیشتر ایشون از آشنای دکتر چه چشمهای دکتر شما شغلت چیه من طلبه هستم آخوندی؟ نه خیر کردم طلبه هستم درس میخونم خب فرقش چیه؟ بالاخره آخون میشی دیگه ببخشید خانم دکتر گفتن زهر صداد داره فلج میشه پس تکلیف ما چی میشه؟ امیرعلی امیرالی, امیرالی بچته؟ زهرا میخواد از اتاق فرار کنه خودت زهرا رو توی اتاق بر سید در حیات بیمارستان تنها کنار حوز خالی نشسته. دورتر برای فوت شده گریه میکره. سید تو بیمارستانه و حمید پیشش میاد سهرانای کم سید علیه کم سلام بهتر شکر خدا با دعا کنید همین دعا تاییم حاکزا من که نگردم فقط دعا بردیم و کمپورت خدا بهشون سب آقای قادمه نیشابوری به بخش زنان سید چمار سلام میکنه معروف شدی همین یکی رو داری آج آقا نه دوتا بچه هم دارم معلوم میست چه بلایی سر این بیچاره آوردی که به این روز افتاده بله اینا رو باید داروخانه بیرون بگیریم ببخشید امکانش هست یه چند لحظه ببینمشون بردنش امارای این بند خدا چند ماه مریزه. معلوم میست حواست کجا بوده نسخهی به سید میده سید کیسه کمپوتر رو و نسخه به دست خارج میشه سید از داروخانه بیرون میاد و پیش حمید میره شرمنده حمید آقا بریم دواق خیلی گرم سید تو کی میخوایی دست از, از این تاروخ ها برداریم؟ چون به لب میکنی آدمو حمید میره و از داشبورد برد ماشین پول برمیده در این کسادی الحمدلالله دیروز کاسگی خوب بود آقا سید بسرمه خدمت شده ده. ممنون سید به اندازه این نیازش پول بعد میداره بخش زنان ایسگاه پرستاری سید دارو به دست وارد میشه میخواد داروها رو بده که پرستاری بی توجه میره سرپرستار نیست در راه رو نگاه میکنه اونجا هم نیست سرپرستار از اتاقی خارج میشه و به ایسگاه پرستاری میان سید داروها رو میده بفرم من اگه امروی نیست پس خواهیم منتظر میده سید میخواد از بخش خارج بشه که حاج بیا اینارو رو خودت برش ببر فرق خیلی طولش نده وقت استراحت مریضاست خدا خیرتون کیسه کمپوتار رو به سید یا یادت نره سید خوشحال کیسه رو بر میده و به طرف اتاق زهر رو با دکتر صحبت کردم ما موگه یکی دو روز اینجا بمونی مرخصت میکنن حالتی اینجوری بدم نشده شما که تو خونه آروم قرار نداری اینجوری یکم توفیق اجباری هم هست استراحت میکنی حالا بیا یک کم ازی بخور بقول لعظم خانم جون بگیری زهرا گریان مات به گوشه تو خدا گریه نکن طوری نشده یکم ضعیف شده اویم خوب میشه او خاک آقای خدا بیا ماردت آقا تو رو به جد هم فاطمه زهر میدم شما یکی راستشو رو هم بگم آقا سید شما کشبه دروغ نمیگفتی دارم فرج میشم ها شما بهم بگو. خودت زهرا گریه میکنه و باز زیر چادر نماز که حالا همچون ملافه ای روی خودش کشیده میره. میشه. <تصحنت> <تصحنت> سید این فردا و به پنج. گاه پر سهیه چال گردنش رو دور گردن مبزه. سپیده چای میشه ببخشید خانم سپیده بله. خانم سپیده ما امروز خیلی به شما زحمت دادیم اجرتون با خدا با. من ۱ سال هشت سال عروسی کردیم پس خیلی کوچیک بوده شهرستان رسم خودشو داره مرز میکردم تو این هشت سال هیچ وقت تنهاش نگذاشتم به خصوص طاقت دوری بچه ها رو نداره شما خودتون خانومی حتما مادرم هستی به هر حال این چیزها رو بهتر میفهمی سفیده متحجب به سید نگاه میکنه براش خواهری کنی ممنونتون میشی سپیده به سید که ساده دلانه حرفش رو زده و رفته نگاه میکنه سید در ایستگاه متروه و تنها به رفتن قطاری نگاه میکنه دوتا بچه فالفروش فرار میکنن که به آوری میخورن و فالها میریزن سید نظارگر سید توی خونه پیاز خورد میکنه پیازها رو توی مایتابه میریزه از روی کتاب پیش میره آیده همونجاست آتفا خانوم مشق نداری نشستی پای تلویزیون؟ نمشتم میسوزه چی؟ میسوزه چی میسوزه؟ زیر گاز کم میکنم بابا گستمه دارم براداش درست میکنم بابا مامان کجاست؟ مامان مریض شده باید یه چند روزی بیمارستان بخوابه تا خوب شه. من گفته به عاطفه جیمیش بگم این چند روز باید مواظب بابا و آقا امیرعلی باشه. مامان زهرا میگه سوپ برای مریضه. بچه‌ها باید ماکارونی بخورن. بله، اما از این آش که من میپزم شما بخور. میفهمی که امیرعلی آش دوست نداره. ماکارونی دوست داره. دیگه عاطفه خانم داره و اخلاقی میکنه کلاو میره تو. عاطفه ناراحت میره. امیرعلی خودت خراب کرده. مثل کمش کردم سیدن می‌سوزه امیرالیه بابا کار خرابی کردی؟ حالا باید چگاه کنیم؟ بابا؟ بعد آوازش کنیم حالا شما خوش هم میری؟ مابان داره گفت وقتی امیرالی رو عوض می‌کنی من نگاه نکنم آتفه آیدا رو هم با خودش می‌بهد آفه، آفه، آفه بله، آقا، بله خب شب باره امیرالی رو در بیاریم بله. پوشنگه ش تو همون بشوریش ارواب بابا رو از دستهنها نذار میخوام مشقه هم تو که گفتی مشقه هم تو نوشتی میخوام دو باره برامیم دو پارچه دور امیرعلی پیچیده و از دستشویی بیرون مید آیدا هم که چون بات مزده بود ضبط صد در دست دنبالش میگه. امیرعلی بابا آفرین تمیز شده ببین یاد بگیر یاد بگیر آتف خانم نشسته داره مشقه نمیسه لباس تن امیرعلی بابا حالا پوشکت کنم با کله ها. اعطه چیکار میکن دیش کرده. کرد. باید لباس رو به خوبی. روی لباس سید و دست سید. عاطف میخنده. سوخت. امیرعلی هم میخنده. قضا سوخت. شب شده. ازم خونم به همراه آیدا دم در خونه سید هستن. در میزنن. سید بچه به بغندر رو باز میکنه سلام علیکم آچ خانم بفرمین تو بفرمین سلام. زحمت کشید آچ خانم غذا بود خیلی دونم بویش خونه رو برداشته سید دیسه چلومرگ رو توی سفره کنار ماست نزره بیا اربا بیا خدا برات رسون قضای ازم خود ما دوست ندارم ناشکری نکن بابا خدا قهر نکنه بعد نزد دیگه داری آسلام رو سر می‌بری. بیا ببین تو بخور تلویزیون خاموش کن اون تلویزیون خاموش کن بیا اینجا خاموش کن بیا بیا بخور غذاتو عاطفه ناراحت و ناچار تلویزیون خاموش میکنه و پای سفره یه چند روزی مادرت نیست اباز که کمک که من باشی هی بهانه میگیری بخور داغ غذا بخور بابا چاقش بخور بخور یک کم امیرعلی غذا نمیخوره ای بابا الان میل نداره الان امیرالی سیره بابا بخوره آتف زیر نگاه نگاه بخور بابا بخور الان داغ نیست دیگه بخور سید لغمه ای میخوره آه پدمزه هست آتف زیرزیره کی میخوره آتف میره و امیرالی هم میخواد از تو بقل سید دنبال خواهرش بده سید اصمیش ده امیرالی رو زمین میزن امیرالی با کاسه ها و عروسکش بازی میکنه و اونها رو تکون میده و سید متعجب نگاش میکنه تو چی میگی پدر سرواتی؟ من نمیفهم ارواب بیا ببین داداشت چی میگه نانای نایی میخواد نانایی نای چیه؟ روزایی که شما نبودی بعضی وقتا مامان زهرا پردارم کسی به اون نانای نایی نای میکند دست زهر صدا درد نکنه همین مونده ما برای شما نای نایی کنه چیم اگه خیلی هم خوبه حرف نباشه برو تو اتاق بخواب. <تصفيق> شبه بیا بابا زهیه پردر رو کنار زده و به آیدا که توی خونه زهرا خانومه نگاه میکنه و به آهنگش گوش میده پردر رو میبنگه میخواد تو اتاق بره که به آشپسخونه میره و لیوان آبی میریزه و برای عاطفه میبره <تصفيق> چی شده ابا؟ آب میخوای؟ نه خیلیدم ماما زهرا میگه. مامان زهرا باید دو روز بیمارستان بمونه تا حالش خوب خوب بشه تو این دو روز هم دختر بابا باید خوش اخلاق باشه مراقب آقا امیر و باباشم باشه موقع خوابم هم نمیشه چه دایی؟ باید دعا کنی که خدا مامون زهرا رو خوب کنه که زودتر بیاد پیش ما خدا الان بیداره؟ خدا خدا همیشه بیداره به قبول سید از اتاق بیان به سراغ صندوقچه میری بازش میگن عکس عروسیش با زهرا ساداتو ببینی مقداری پولم برمید در دفترشی یادداشت میکن هزینه م رو بود به بیمار نگاهی به پولا میکنه خیلی کمه سید نماز میخونه در انتهای نماز نگاهش به دار قالی میفته نزدیک دار قالی میشه با تارهای اون بازی میکنه نگاهی به نقشه قالیچه میکنه، کنه نخی رو بر داره و شروع به بافتن قالیچه می کنه سیه در لباس روحانیت بچه به بغل وارد حیات خونه شده و با آیدا که ضبط سوتش دستش روبرو میشه عاطفه از در خونه بیرون میاد. سلام علیکم عید خانم سلام مام بزرگت کجا پاش درد میکنم سلام علیکم عید خانم بالا دور ان شاء الله شب تا صبح نخوابیدم از پادر خدا خیالت بده من داشتم عاطفه رو مدرسه من بر... نوبت بیمارستان دارم موندم که چه جوری ما پیش نوبت گرفتم چه جوری خودمه برسونم بیمارستان خدا همه مریضار شفا بده ایش سید و بچه ها در کوچه به طرف مدرسه میرن عاطفه بود بابا دیر شد خودم بیشم مرم مدرسه گم میشه بابا جا مگه عروض با مادرت نمیرفتی سلام سلام. نمیشم راها برده دم خودم بیرم شما نمیخواد بیرم کجا میری بابا؟ آتفه دوان دوان وارد مدرسه میشه سید بچه به بغل وارد حیات مدرسه تو لاک میشه باولایكوز. سلامون علیه کجا باشه؟ سلامون علیه سلام. کجا این کجا باید میشه؟ تو اون مدرسه ممنون اما فکر کنم مقای سهاج آقا رحیم یه قدری برای غذاده سنگین باشه اما سید مجبور به طرف در کلاس میره پشت در تعداد زیادی نعلین و دمپایی هست آجا آقا رحیم مشغول تدریس هستند. سید پشت در نیست. لحظه بد می‌شینه و امیرعلی رو, رو روی پاش میزنه داشت از لایه در رو باز میکنه تا صدایی حاجقا رو بهتر بشنن دفتر یادداشتش رو در میاره تا نکاتی رو یادداشت کنه. دو طلبه سید رو در اون وضعیت میبینن و تعجب میبین اما سید برونه لبخند میزنه و طلبه و میبین پیر مردم توی حاجقا رو مون. مگه باید غیر این باشه خدا هر به من گفته سید شش. امیرالی رو زیر عباش پنگان می کنه امیرالی زیر عباش کلافه پیر مرد ساده روستایی نه فرصفه خونده نه سر از علوم قریبه در آنه نه لیازت و چل نشینی بوده. فقط راست حسینی به هرچی فهمیده عمل کرده هی علم رو علم ثبات رو ثبات سیاهی رو سیاهی اما عمل نباشه چه پایی؟ مدیر مدرسه میاد و سید رو در اون حال میبینه سلام علیکم آجا سلام علیکم و رحمت الله بهتر نیست این کارهای زنانه رو به اهل منزل واگذار کنی؟ جون شما کارهای واجبطری دارید که باید انجام بدید. حرمت این لباس رو حفظ نمی‌کنی؟ به خاطر رضای خدا حرمت این مدرسه رو داشته باش مدیر میره. سید امیرالی رو بو میکنه. بله. دردسر. سید پوشاک امیرالی رو در یکی از اتاقها عوض میکنه و بیرون میاد. نمیشه شما یه امروز مراحت بابا تو می کردی؟ تازه رسیده بودیم به جوهر کوش. ها کاورمون ورتی بابا. کلاس درس حاجی قرهیم تموم شده و طلاب یکی یکی بیرون حمید از دور برای سید دست تکون سید رضا با امیرعلی و حمید توی اتومبیل هستن. سید پول حمید رو برگردونده. حالا چه عجله‌ای بود؟ حمید آقا. یه شاید تو بازار فرش داشتی. هنوز باش مرابده داری؟ خیر انشالله شاءالله. اگه بشه گالیچه رو پیش فروش کنم. مادر امیرعلی که بنده خدا گرفتار دوا و قرار خود یاد جوانی اعتکاردی بالاخره باید این روزا رو گذروند. حل خیرا فی موفق. علی آقا سیادت. بس کلاوی بفهمم کمال تیمت شما کار زیاده. چه منبر نمی‌رین؟ خبر ادضيف کنن. وقت برای این کارا زیاده. شما نقدن یه مشتری برای قالی چرادری. بیمارسا. متاسفانه هاش آقا هم درست بود. نتیجه ی و نتیجه آزمایشا بیماری MS همسر شما رو تایید میکنه. خیلی آروم شروع شده. ولی الان در حال پیشرفته این بیماری ناشناخته است درمان قطعی هم نداره فعلا با دارو میشه جلو پیشرفت بیماری رو گرف یه چند روزی مهمون ما هستن بعد میبرینشون خونه دواهاش هم خودتون بهش بدین فراموش فراموشتون نشه خواه من میرم اتاق دکتر عبدی اگر من کار داشتیم زید مستحصر از خونم دکتر و ایسکای پرستاری دور میشه سپیده؟ وارده ایسکای پرستاری میشه آجا اقای این لباس خیلی بهتون میاد چرا همیشه نمیپوشین بعضی وقتا به درد میخوره و سید عصبی به سپیده نگاه میکنه سپیده هم از حرف خودش ناراحت شده اگه بخواین میتونین یه دقیقه بریم ببینینش سید مرت نده بالاخره تصمیم میگیره توی اتاق زهراسادات روی تخت روی تخت نشسته نمازو بخونه قبول باشه قبول حق کاش بچه آورده بودید والا قدقنه خودم هم به زور راه میدم میگن فقط ساعت ملاقات میتونه بیاد. ساعت ملاقات هم بچه راه نمیدن زهرا جا نمازو جمع بکن با دکتور حرف زدی؟ نگفت من جمع شده حالا با دکتر رو طرف زدم گفتش که آقا سید تو خدا راستشو بکنم زهر و من کی تا به شما دور گفتم دکترت گفت یکی دو روز دیگه مرخصت میکنم فقط یه شرط داره دکترت گفت وقتی زهر و برگشت خونه برای بچه نای نایی نایی نای کنه حالا شاید منم بود ایفای خدا منو بکشه سر به سرم میذاری خواهی من از خجالت بکشی از زغفر الله کسی واسه بچهان نای نای نای کنه خجالت نداره زهن سادات شهر میگین دراز میکشه و زیر چادر نماز میره سید پرده بین دو تخت رو میکشه سید رزا در با تلفن عمومی بیای تهران خوهر جان تهران بالاخره ببین شما دوتا خانم حرف همو بهتر میفهمی. نه خب بعضی کار از اونتی ما برنمی هم زهر سادات که اینجا کسی نداره بری چی آخر برج خدا نگهدارشون بشه نه خیل, خیل. باز اگه تونستی بچه ها رو بسکری به والده احمد آقا خیلی خوب می سید میوه خریده رو بخونه سید رضا پایدار قالیه و عاطفه می امیرعلی امیر علی رو, رو روی پاش بخوابونه سید خسته است. عینکش رو برمی‌داره. چشمو خیلی خسته است. به بچه ها نگاه میکنه عینکش رو می و دوباره مشغول میشه. آیدا ضبط صوت به دست، وارد خونه میشه، اما توی اتاق نمیاد. سلام. سلام علیکم آیدا خانوم. پاشو ببین کی اومده. بیا تو عمو. زاپتو روشن میکنه و با آهنگش حرکاتی انجام میده. سید عصبی میشه. عاطفه به آیدا اشاره میکنه که پدرش بعدش میاد. امیرالی اما دست میزنه. سید اونو بینه و لبخند میزنه. عاطفه اشاره میکنه که خوابوشش کن. سید میخنده. اما آیدا زاپتو صد خاموش میکنه. آیدا آروم وارد اتاق میشه و اوز بالله من لا شیطان اورجین باسم الله الرحمن و رحیم قل هو الله احد الله الصمد لا یلد ولا یولد او یرعا کهد اوخفرهت آفرینمو بارک الله چقدر خوب قران میخونی کی به یاد دادی اعظم خانوم یادت داد نه خال زهره یادت داد جاناب، جاناب، لیس، لیس، کم با، بابا، بابا، بابا. گریم منم. از حالا من پش با پرداز بکیش. آیا؟ روز بعد بیمارستان وقت ملاقات. امیر در بغل سپیده است که آهسته در رو باز میکنه عاطفه و سید و حمید هم هستن دختر همراهی تخت بغلی که اونا رو دیده نگاهی به زهراسادات میکنه سپیده دست کن میده و تشکر میکنه و بعد دست آتفه رو میگیره و به طرف زهراسادات میره زهراسادات پشت به همه دراز کشیده و چشماش بازه زهراسادات خواب تشک دارم؟ ببین کی اومده؟ قلطی میزنه بر. بچه ها رو می‌بینیم آتفه رو بغن می‌کنیم سپیده امیرعلی رو به بغن زهر و صدات می‌کنیم بگه اخماتو با اینم بچه های خوشگلت آقا سیدرزا تونم بردون گلا بردم سلام علیکم یوالا سلام علیکم سلام هست خوالا بهترین ایشالله شکر خلا بهتره. چرا زحمت کشیدین؟ ایشالله زودتر که سالات رفت بشه تشریفه ببرین مرزر بفرمین، شینی، بفرمش. در حیات خونه سید پیرمردی دست برپشت قدم میزنه و آتفه و آیده از پنجره اونو نگاه میکنه سید رزا در حمام مشغول شستوشوی لباس و امیرالی ها حمید در حمامو باز میکنه بیا آمدا، بیا آمدا، صاف کنه بای جزب. اینی که میگن میگنزن دوم از اوجب واجبات. فعلا ما تو واجبش هم موندی. خیلی خوب. خوشکم میبرم مهمون نبیرم. پیرمرد پای دار قالیه و همه اهل خونه منتظرن حرفی بزن بد نیست. زیادم جالب نیست. کاری؟ نه خیر اختیار دارین. سال‌هاس خونوادگی تو کار فرشن. الان تو بیشتر خانواده‌اشو میبافن. تو اینو زحمتشو سیات کشیده بازار خرابه. خیلی سخت بشه ردش کرد. اگه تو شب بتونین تمومش یک کارش میکنم نه آقا نه آقا تا اید که به خدا تمومش میکنم پس معامله تمومه اینم پیش قصدش به به مبارک باشه آجا آقا ایشادا نردن خدامن تو بهشی جای دین جا آروم نصیبت کنه <تصفيق> <تصفيق> اگه چیزی کما کس تاشتی به این آقا عمید بگو میدم برات بیاره لطف کردین آجا هستم خدمت خدا حافظ خدا پشت و, محب... <تصفيق> <میره> و, و همین پشت سر حمید امیر رو که تا اون موقع بغلش بوده به سید میده. ارباب شام بریم بیرون. آخ جون، پیتزا، پیتزا، پیزا بکش، بکش، بکش، بکش، بکش، بکش، بکش، بکش، بکش، بکش. عاطفه و آیدا تیکه پیتزا در دست دارن که پنیر اون کش میاد. لقمه ها آماده است. حمید هم با اوناست. منده عملی گفت که ما داشته باشم بله دیگه اصلاً اون دفتر مالیات معلم اصلا نمیشه شما حساب کرد آقا شما نگران نباش گفتم گفتی ایشون باهاشون صحبت کرده، گفتن اجازه بدین یه چند وقت ما فکرامونو بکنیم همین دیگه همه بدبختیه مثلا همین فکر کردنه فکر میکنم میگن نه شما توکر کن با خدا فعلا غذا تو کن من حرفش رو نگا گفتم بچه‌ها از ببینم. حیات خونه. ازم خانم اسفند دود میکنه. آیدا هم امیرعلی در بغل کنار دستشه. دو باید. دو باید. زهر و سادات روی ویلچر به کمک سید و همید وارد حیات میشه. عاطفه خوشحال به استقبال مادر میاد. عاطفه که مادر رو در اون وضعیت میبینه ناراحت میشه آتفه برمیگرده میگرده توی خونه زهرا دلش میشکنه عاطفه از پنجره به مادر نگاه میکنه شب شده و زهرا سادات دوباره در اتاق لالایی میخونه برای بچه سید مشغول بافتن قالیچه است. لحظه عینکش رو در و به صدای زهرا گوش دوباره اینکش رو میذاره و مشغول بافتن میشه صدایی در اتاق توجهش رو جلب بکنه بلند میشه و به اتاق بری سهرا صدا چه رو بیام کمک دستش رو بادرت من کنه خودم میتونم بیام زهرا جان بیشی برم برای چای چایی بریزم این مدت خیلی به سختی افتادی یا شما شما که از این تاروف ها بدت نبودی های چه بیزا خانم دکتره؟ سید کنارو زهران میشه دلم برای لالایی گفتنه تنگ شده بود. دیگه از فردا میتونی بری به درسات برسی این روزا که همش گرفتار بیمارستان بودی حاجه غاره این کسالت داره فعلا درس و بحث ما تو خونه از کنار شما اگه خسته شدی میتونی بیرونم کنی خالی با که خیلی خوب شده آقا سید میگم که شما تیزی آتفشون بچه هست زهرا ساداد مادرش رویلچر دید جا خورد عادت میکنه حالا شما چایی تو بخور تا من برم گرستاتو بیارم فردا میرم آمپولاتو میگیرم با اون دکتر گفت تا یکی دو هفته آمپولاتو بزنی خوب خوب میشی با قول حمیده آقا قرص با یه سر <تصفح> چایی از دست لرزان زهرا ساداد میافته سید در لباس شخصی به همراه عاطفه در راه مدرسه. ارباب روا بدین میخواین من مدرسه؟ نه بیا. جلوی در مدرسه. سید پولی به عاطفه میده. میگه ارباب، این چیکار کی شما سوار می‌کنین؟ هر وقت ما یه لباس تنمون، هر چی مثل باد میای که ما بهت نرسیم. هر موقع که ما همینجوری در خدمت شما ایم، دست ما رو صفر که فرار نکنید. ها بابا، عاطفه بوسه ای بر صورت پدر میزنه و میذونه توی مدرسه. سید از این کار خجالت کشیده اما خب لبخند میزنه زهحر و توی خونه با کبریت گاز روشن میکنه چوب کبریت از دستش میه قبل رو آب میکنه اما قابلمه یه بر میشه لنگان لنگان توی آشپزخونه میاد قبل رو به سختی روی گاز میزاره. از آشپزخونه بیرون میاد اما توی درگاهی میخواد زمین بخوره که خودشو می گیره امیرعلی روی زمین دراز کشیده آب توی قابلمه میجوشه زهرا میخواد از توی کابینت ظرف ماکارونی رو برداره که ظرف بقلیش میفته پای گاز میاد قصد داره در ظرف ماکارونی رو باز کنه سفت زور میزنه و یک دفعه همه مکارونی ها روی زمین میریزه میخواد بشینه اونا رو از روی زمین برداره که دستش به قابلمه آب جوش میخوره و به زمین میفته و آب جوش بقل پاشمت ازم خانم توی حیات صدا رو شنید سهر و ساداد سهر زاداد. داری چیکار میکنی؟ سهر و ساداد سید توی داروخانه است و نسخه رو میده دوازد تانپول مصرف یه امارشونه با بیمه میشه صد در ازادتون بگیدین زحمت بکشین بدین. ببخشید یه زحمتی میکشین از این اسایه هست که تا آرنج میاد از اونا هم میخواستن یه دونه نه دیگه همون دوتا ببخشید رضایت فیلم کنیم از اون بروس به این بدین. کدون رنگی شد اونم صورتی عربه تو کجایی زهرا ساداد زهرا دوباره قابلگر آب کرده توی آشپسخونه میاد جلوی در پاش گیر میکنه و دوباره میاد یادم دایی ساداد دارین چی کار میکنیم با خودت؟ چرا را را افتدین شما باید سلام استراحت کنیم میخوام برای بچه هم ما درست کنم از مجرسه میاداته به گفتش این بابا زرپاره چی را نختین گفتم من واسه هیچ سبزه بقره آش درست کنم برادون چه آش روز نداره آش ما کار نیم خود ما کار نیم چیم درافو وای سایی مریضی موری سراتگون ازم خانون کمک میکنه زهرا پاشه اما زهرا لج میکنه سید رضا عصا و دارو خریده و توی خیابون جلوی کتاب فروشی میسته و به ویترینش نگاه میکنه زهرا باز هم قابلمه در دست وارد آشپزخونه خونه میشه و چرا نرد واضح میکنی مادر؟ شما برای استراحت مادر مادر جمعه بودم براتون مادرانه درست میکنم دیگه بولنش مادر، بولنش عزیز بولنش این مادر اشکال نتاره من خودم اینجا را تمیز میکنم شیره با خودت اینطور میکنی من هرچی میفن خودم درست میکنم بیا بولو <مش> <مش> تو اتاق، برش شیطان لنه چراحتم نمیذاری؟ مگه فات درد نمیکنه، بیا بارو خونتون بسید، بدبختی خودم نمیرون تو شیره دل زدی به من؟ بیا دست باما بازارگتو بگی بارو خونه سید ازا وارد حیات خونه میشه صدای گریه امیر توجهش رو جرد کرد زهرات کشان کشان خودش رو به دار بالی آیدا که امیر علی رو بغل کرده بود اون رو به سید نه شده ده؟ نه سمه نزنیا به خود اگه دست برمزنی خودمو میکشم آقا سید میبینی دیوانه شده شما باید ببخشی آج خانم بفرمه شما من باید صحبت دست داد نکنه همون چه پرو پرو کمکی آج خانم خیلی باید ببخشی من شهر زهرا ساداد سیه در میبند و سراغ زهرا میره زهرا خانم راست میگه فکر کنم دیوونه شده بابارم کستی آشباز چرا با هم میریزی کار منو میخوایی زیاد کنی حالا میگی بفهمم چی شده دیگه چی میخواستی بشه خواری ازی بیشتر که بروم میاری آشپس خونم شما باید جمعه کنی دارم فرش میشم نمیبینی دستان جون نداره پا آمار خودم نیست یه غذا نمیتونم برای بچه هم درست کنم همین یه نیست ساده جان همه مریض میشن. مریزی مال آدمی زاده. شما هم یکی استراحت استراعت میکنی دواهاتو میکنی توکل به خوده تا چند وقت دیگه خوبی فکر میکنی من بچم بخوایی منو گول بزنی فکر نمیکنی من میفهمم که دلت برام میسوزه شما میگردین که گوشت خدایا جن نمیکشی رو عدم کنی و فوت فاطمه خفت نده به خواهی زرده زهره ساده چرا کف میگی کدا قهرش میگیره ناشکری نکن به فکر زندگیمون باش مرمه براستایشگاه اصلا،, اصلا برم گرد و نجابور خسته شدم از توقت این خونه ندارم خسته شدم آه. خسته شدی؟ منم خسته شدم خیال میکنی خیلی به من خوش بگذاره این کتابو میبینی؟ یک ماه باز نکرده کارم شده پخت و پز و کونشوری بچه ها که همه شو ناله میکنی خیر سرام آمادم درس بخونم این شده زندگیم مخوای بری نشابور میبرمت همین فردا میبرمت می‌برم می‌ذارمتون جا، خودمم یه کوچه میگیرم میشیم سر درس و بحثم. این همه بچه ها رو میدم به مادر ما ابجیم. خوبه ها؟ همین رو میخوای ها؟ همین رو کارم دارم همین رو می‌خوام. همین رو تو ها؟ چه خبر آقا سید شما دیگه چرا صلاوات می‌بفرین؟ الی رحم و دینند اولی بیزه دست علی بزنه من خبردم آقا. سید رو در آب کاسه خیس میکنه و با اون عشق‌های زهرا ساداتو که مات نگاه میکنه پاکه. رومسی آقا سید حلال هم کن اینجوری حرف ندان دلم میگیره شما بعد منو ببخشی زنیت شدم که خدمت اولاد پیغمبر رو بکنم حالا شدم سر بارد اولاد پیغمبر بودن لیاقت میخواد ایه همه سال شما جور ما رو کشیدی به چند وقتی ما خدمت شما رو بکنیم اینجوری اقلن حواستم به دورو برم جمع میشه شما تاره سرمو داد داد زده بودیم صدا خدا از سر تقصیراتم نگذره اگه یک بار دیگه صدام رو شما بلند کنم البته شما هم کم نیوردی تو رو به خدا بروم نیور بر. دست خودم نبود که حالا من که هیچی این بند خدای عظم خانم که به سکته انداختی خدا من بکشه احترامشون نداشتم باید یه چوری از درش در بیارن. این هم بعد از دعوا بسته رو به زهرا میده خودش کمک میکنه تا کاغذ کاداشو باز کنه دو یه دوسری گلگلی چقدر قشنگه اینه با شما انقدر خوش طریقه بودی؟ این به سر شما قشنگه این هم دوتا اصلا خیلی راحت زود به آدت میکنی براد آمپولات هم گرفتم بعد بریم در اونگاه این هم هست چقدر خوششنگه این برای ما آتفه برای شما گرفتم دوست دارم جلو خودم ماه آتشونه کنی آقا سید میبخشیم میشه صدا کنی؟ کارش داری؟ می‌خوام برام دستشی. دستو دست بذار دست رو روشونه خودم میبرم بیت چیزی شده زهراسا داد؟ باز که شروع کردیم اگه قرار نشد رومسی آقا سید اختیار خودم ندارم ای فرش شروع کن نجست شده باید بشوریش سید و توی فرش فروشی پیش پیرمرد خریدار قانیچه هستن میبخشی آقا حقیقتش یه مقدار دستم تنگه گفتم این اگه... روزا دست همه تنگه حالا باز اگه تموم شده بود یه کارش میکردیم اما اینجوری که نمیشه ما یه پیشخصی هم دادیم ولی معلوم نیست شما که کارو تموم کنید این چه حرفی آقا الان که شب عید نیست زودتر تعوید میدم اول ما خوبه نه شما نگران نباش. تمومش میکنم. اول ما فرشو میارم. این شد یا چیزی؟ اینجوری واسه خودت هم بهتره. زودتر به پولت میرسی. الان دیگه زحمت خودتو داری میگیری. حقته. اما عموم واقعا انقدر قابل نداری که کم کسی داری به من بگی. سید در قطار مترو نشسته پسرکی ای سازده هنی میزن دخترکی فال میفروشه سید پول فال رو میده یه آبنبات نبات هم بهش میری سید در کوچه خودشون حالا به خونه میرسه میخواد وارد خونه بشه که میبینه آیدا دم در خونه روی پله ها نشسته و پنج تا شم روشن کرده سید کنار آیدا میشه علیکه سلام چیکار میکنی پدر صلاباتی واسه سی خرید زهر از خوب باشه نمیاره از کیسه خریدا چیزی به آیدا مده دعا کن دعای تو مستجاه در حال نماز و نیایشه سید قالی چه میدونه آیدا ضبط در دست توی حیات کنار حوز با آتفه بازی میکنه زهراسادات از پنجره اونا نگاه میکنه و لبخندی میزنه سید به قالی بافی ادامه میده چشماش درد میکنه تار میبینه و کار براش سخت میشه صدای در درد به سلام علیکم آقا. سلام علیکم خانم. مرا که فراموش نکردیم اختیار دارید چه فرمشیه؟ ما شرمنده زحمات شما هستیم. با اجازه سپیده وارد حیات خونه میشه و سید درو میبنده. بچه ها خونه نیستن. رفتن همین بغل. بره. پس پدراشدت زهرآساداتش بهتر شده. بله، الحمدلله. چه قشنگه. اینو زهرآسادات می‌بافه؟ بله. یعنی با هم می‌بافن. چه خوب که با هم کار می‌کنیم. اینجا اتاق شماست چه میزی با آمزده سید پریشونه نمیدونه چی کار کنه اگر رفته بیرون پسانش خیلی بهتره بعضی اوقات پخت و پزم میکنه معلومه خوب مراقبش بودی الحمدلله خوبه البته با اثر آمین اونا رخت خواه دوستش داری نه سید سر به زیر داره پس دوستش داری خوش به حالش یه وقتایی بهش بگو این حرمه ممرزه هاست بله عشنگه خونه جمع و جوری داریم ولی یه حال خوبی داره آدم رو یاد بچگیهاش میندازه این کتاب درباره یه ام اسه. بیماری زهر و ساداد گفتم شاید به درد بخور از شما درد نکنه لطف یادی خیلی دلم گرفته بود گفتم بیام پیش شما شاید حالا بهتر شد احمقا نه هست تو بیمارستان یکی دوار با زهراساداد حرف زدم یه جوری حرف میزنه به دل آدم میشینه نه من دیگه باید برم به سلام برسونی از طرف من ببوسینش اصلا تا حالا سید خجالت زده نمیدونه چی بگه سپیده در حیات از کنار حوز به طرف در. سید به دنبالشه. کنار حوز نیست. زپیده کنار درخت. خوشبختی یعنی دیدن چیزای کوچیک. اینو زهرا سادات بهم گفت. امروز مرخصی گرفتم که برم دادگاه. بعد پنج سال نرفتم. خیلی دوستت داره. مراقبش باش. بهش بگو با احپاش خیلی فکر کردم. سپید میره و سید تنهاست آتفه تلویزیون رو روشن میکنه امیرالی بغل سیده و زهرا با اصاراه میره سید امیرالی رو توی رو میذاره و زهرا در درگاهی خوبی میاد. زهرا جا میخوره و سید نگره خب ارباب تعریف کن ببینم خوش گذشت برمام دعا کردی سید پنجره رو باز میکنه که بو بیرون گره زهر مسادات ناراحت به طرف اتاق می. آتفه جونی مگه شما مرشت نداری که نشستی سیفایی تلویزیون سید ناراحته شب شده صدای آهنگ آیدا در خونه خود شد زهره پایداره سید زهر خود آقا سید میگم ماشاءالله خیلی بهتر از من میبافیا داری شکست نفسی میکنی؟ میگم که امروز توی ختمانام دختر همین همسایه بقالی را دیدم بنده خدا شوهرش تو تصادف مرده بچه هم نداره به نظرم دختر خوب به اومد اگه برای همیند آقا میخوای دست آسین بالا بزنی الان حواسش جای دیگه است اگرم میخوای آدمی زاده دیگه کی از فرداش خبر داره خدا رو خوش نمیاد این طفل محصوم و بی مادر بمونه شما نمیخواد نگران من باشی من خودم به فکر هستم چند وقت بود مخواستم بهت بگم خدا رو شک خودت شروع کردی من یک نفر در نظر گرفتم قانون محترمیه برای روشم به از شما نباشه بد نیست یعنی میشه گفت اصلا قشنگه البته جایی شما رو که نمیتونه بگیره آدمی زاده دیگه زهراد چیزی می کنده تا با سید زهراد ساداد میخوای مار بکشید؟ بذار سلامه بذارم زمین بعد به فکر هوا خورید باش هوا خوری کدومه؟ شما خودت گفتی؟ من یعرفی زدم شما چرا حال کردی؟ سید پیش زهر و ساداد میشین زهر و سادات؟ شما دلت میاد آقا سیدت تنها بگذاری؟ شما که نامهربان نبودی؟ شما که نبودین؟ خانم پرست داره آمد خدا خیرش بده دلنگران شماست این کتابمو حالا بگو ببینم این کاغذ چیه دسته کارت واکسن امیره غاست واکسن دو سالگیش مونده یه وقتی دیر نشه. این دوست غاست خیلی چشم شماست همون نسخه قبلیه و یه ماهی دیگه نوبت گرفتم باز دیگه میجی باید که باید اینو به خودت ببری که کسیم به فکر خودت نیستی میترسم و کار دست خودت بذیم لازهیت چهانم؟ بچه مادر میخوام. شما که نمیتونی به درسو برسیم به قطعه تو خیلی هم من از کنم چشماش خیلی ناناحته تار میبینه و انگوشتشو میبوره رو زیر آب میگیری و بعد چسب میزنه و دوباره مشکل میشه خوابش گرفته نمک برمیداره و روی زخمش می‌پاشه. باز هم کار گردنش هم درد گرفته سید با عباب های سجاده خوابش برد زهر و با پنبه زخمش رو پاک کنه سید از خواب میپرد ساعت چنده؟ نیم. مجرسه آتفه از همخورم داشت میرفت بیرون با خودش بردش دستته بده؟ چی؟ دست. چیز ماهیمی نیست وقتی که توی کارگاه کار میکردیم شبای عیدی وقتی وقتای که عجله بود دستمون رو زخم میکردیم تا صبح روش نمک میپاشیدیم بی میادم داده بود میسوخت خیلی میسوخت اما تا صبح کار میکردیم سید مقموم و خسته نگاش میکنه زهرا سراغ اساس میره و بلند میشه سید باز هم نگاش آماده است سید با قیچی دار رو میبره بسم الله الرحمن الرحیم سید قالیچه رو در چیزی پیچیده و از در خونه بیرون میاد به درخت توی حیات که سپیده کنارش ایستاده بود میرسه لحظه دره گلی روی رفته. نبایی میکنه میره زهر و از پشت پنجره سید رو نظارگره سید قالیچه رو توی فرش فروشی پهن بکنه خریدارا قالیچه رو چک میکنه سید مسترسن بد نیست خیلی هم جالب نیست خب بعدی رو که شروع رو کنیم با اجازتون یه مدتی نمی کار کنم تا خودت چی بخواهد سید قسید چیه اگر نگران پولشی با نیست این یکی رو این ورسال تصفیح می پیش قصه بعدیرم بهت میدم. به به دست شما درد نکنه. من فکر که دیگه پول نیست آجا. پس اون چیه؟ بابت حسابی کردیم یا مشتری دیگه پیدا کردی؟ آقا سیه خیلی‌ها در باغ سبزشون میدن ولی وسط کار لنگت میذارن. اونم تو این کسادی بازار. فرش ماشینی شده آفت هر چی کالی بافه. سر قیمت با هم کنار میان. ما که نمیذاریم سید اولاد پیغمبر از دست ما با ناراضی باشه. شما ما نکن همین و سید توی وانیت. نمیدونم چی شده روز کاسبی که ساده. انگار هیچ کس دادم دماغ اسباب کشو اینجور کارار نداره از مدرسه چه خبر؟ اتفاقا شیخ کازم سراخته میگره گفت این سیده ما مثل اینکه اونجوریم که به نظر میرسید دلوستگی مشق و درست نداره گفتم آره <تصفيق> بچه ها دلشون گرفته قبلنها مادرشون میبردشون گردش میگم همید آقا اگه این جمعه و آفتابی بود بریم یه طرف کوهی دشتیم تایه بلا چی بهتر از این همه توی وانت حمید هستن و به قول سید یه وری رفتن عاطفه و آیدا و سیدزا پشت وانت نشستن و پتوی روی سرشون انداختن ماشین از توی گل رد میشه جای سبزی. همه خوشحاله همید آقا اینا خوب اندازش شدیگه نه بابا درشت دونا اونا مغزش خام میونه خوبه دیگه سخت آسیه شهر وقت می صحبت کردیم به به مبارکه سلام آمد حل حله دیگه 5 درصد محله 5 درصد اونا گفتن بد فکر کنن مبارکه بابا همون اصلا این فکر کردن فکر می‌کنم اما همین توپو بندا خاله یاد تو ببینم چه تو بازی می‌کنه بیا وسطی تو این تو بازی فقط آروم بذار یاد درد کنه زین پشتو بیا اینا مرا قایم گیر آوردم پشتو آقا کن من اونجا واش شده صبر کن یه گل حمید توپو برمی داره و به طرف ها میره توپو به آیدا میده و مشغول بازی میشه ازم خانم در فضای سبز قدم میزنه سید به زهرا و امیرالی که نشستن نگاه سید سیدم بلند میشه و برای بازی به اونا میبیند زهرا سادات لبخند زنان اونا رو نگاه میکنه امیرالی خوابه با چادرش روشو رو میپوشه میپوشونه زهرا شیشه عطری از کیفش بیرون میاره و به خودش میزنه بوش خوبه بقیه همچنان بازه میماره سید از اونا جدا میشه و به طرف زهران میاد. <تصفيق> امیرالی رو از زهرا سادات میگیره و روی زمین میخواه خدا کنه که پیشی به حق داره چه بوی خوبی داره شما خودت هم خوشت میان؟ مگه میشه خوشم نیاد؟ شما برم خریدی؟ فت دلم نمیاد می ترسم تموم بشه زهرا قرآنی در میاره. اونو میبوسه و خیلی وقت برم قرآن نخوندی میشه بخونی؟ سید قرآن رو میگیره اونم ای بر قرآن میزنه قرآن رو باز میکنه اما اما چشمش خیلی تار می‌بینه. اصلا نمیتونه بخونه. سیج ناراحته. برای که زهران نفهمه، از بار سوره میخونه بسم الله الرحمن الرحیم. علیم نشر رک و غذا نا انکه وزرک. الله دی ان غذا ذهرک و رفع زهرا هوش نیست و فقط گوش میده. فانما مع الاسرى مع الاسرى يسرى فاذا فرقت فرقت و ربك فرقم سيد رو میبنده و خوندن رو تموم میکنه و به زهرا سادات خیره میشه زهرا سادات لبخند میزنه چه <تصفيق> جوری فهم دوست خیلی دوست دارم زهرا چشماشون میبنده و احساس رضایت بکنه سیهدم لبخند زنا دراز میکشه کلاس درس هاجاغا رحم و نعلین طلا پشت در سیهد چنبات مزده و پشت در نشسته و گوش بده دنبال راز و رمز سعادت ولی جایی دنبالش میگردن که نیست معلومه که نیست آنچه تو گنجش توهم میکنی از توهم گنج را گم میکنه. کل قضیه خلاصش یک کلمه است تو بگو کلیت بگو رمز اینقدر که میپیچونی پیچیده نیست یکی از طلبه ها با عجله میاد و وارد کلاس میشه علیکم السلام فرمود محبت واسه خاطر من عداوت واسه خاطر من این که فرمودن بلایت رمز قبولی همه اعماله یعنی همین دوست داشتن واسه خدا یعنی هر کیو خدا دوست داره تو هم دوست داشته باشه یعنی طرازوی دلت بشی خدا محبت واسه خدا نه واسه چشم و خط و خال حتی نه واسه دل خودت فقط واسه خدا اگه میار و میزان محبت خدا باشه اگه قدرم نبینی باز عمل می اگه ناسفاسی هم ببینی باز عمل می اونهایی که تو رفاقت وسط کار کم میارن باسه اینه که به خاطر خدا نگردم اگر نه تو این وادی هر چی بیشتر مبتلاشی مغربتر میشه از کیمیا و یه و زر گشت روی من آری به اون لطف شما خاک زر شدم اون کیمیا که همه دنبالش میگرده محبته واقعیش بیراه هست سنگلاخه حالا فهمیدی قربونت برم که چرا میگم بشوی اوراق اگه هم در سمایی ها که علمی عشق در دفتر نباشه سید یکی از صندلا رو پاک میکنه و بعد شروع میکنه به جفت کردن دنبایه ها کفش ها و نعلین طلا عزیزان شنونده این هفته با فیلم تلا و مس در خدمت شما بودیم امیدوارم که مورد پسند شما واقع شده باشه اما همکاران گرامی که در این برنامه ما را همیاری کردن جناب آقای علی حاجی نوروزی روزی صدا بردار بسیار خوب برنامه و فرشاد آزرنی ها محترم که زحمت های بسیار زیادی رو برای تهیه این برنامه کشیدن و همچنان این زحمت رو میکشن و بنده که در خدمت شما بودم و این افتخار را داشتم بهرام سرورینژا امیدوارم همیشه شاد باشید تا برنامه دیگه خدا نگهدار